جالسه سی و پنجه پواد فقه و سیاسه و حکومت. اسم الله الرحمن الرحیم. هشت دوازده هزار چهارصد. اسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. والسلام الله على سيدنا و نبينا و الرسول محمد. وعلى اهل بيته تاهرین المعصومین سیا مبقیات الله فالأرزین روحی و عرفا حول العالمین علیه الفدا. با توکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و بیت ادهار علیکم و سلام بحثمون را آغاز میکنیم سلام علیکم جمعیت بحثی که ما داشتیم در بحث قواعد مربوط به فقه اهم و مهم بودیم قلگوی خاصی رو بر اساس جدل تظاهوم مسائل نظام داشتیم ترخ می کردیم، میارهای رو ما خدمت دوستان عرض کردیم یه مقدار بر بحث که به اینجا رسید که ما تطبیق بکنیم بعضی از اون مواردی رو که به صورت کلی ما عرض کردیم چه زوابطی باید لحاظ بکنیم فرض های رو در موارد مربوط به نظام رو ما در نظر گرفتیم در نظام ها عرض کردیم که تضاهم امور ضروری با یکدیگه دیگه یک داره طبیعتا امور ضروری تر باید مقدم بشه اگر هم هم سطح باشه باید فکر دیگه ای بکنیم و اون فکر دیگه بر اساس الگوی رایجی که در فکر مطرح میشه محمودا گفته میشه تاخیر. خب اینجا اگر ما بخوایم بگیم امور ضروری تر رو باید مقدم کنیم تشخیص امور ضروری میتونه از طریق در واقع از طریق نصوص و سطح احکام سطح در واقع احکام واجب و حرام معلوم بشه خب اگه کاری مستحب باشه طبیعتاً امر واجب بر مستحب مقدمه اما در میان واجبات امور در واقع اوجب بر امور واجب مقدم خواهند شد و در واقع نسبت به اونها ضروری ترند اگر ضروری تر نبودند که طبیعتا اوجب حساب نمی شدند که بعضی از حرام ها اموری که از حرمت شدیدتری تری برخوردارند پرهیز از اونها در واقع اهمیت بیشتری داره پرهیز نسبت به اموری که از حرمت شدیدتری برخوردارن نسبت به دیگر موارد حرام خلاصه اهمیت بیشتری داره خب اونجایی هم که تضاهم در واقع بین واجب و حرام باشه اون هم باید ببینیم با کدامش مقدمه طبیعتا در تضاهم میان حرام و واجب در واقع پرهیز از حرام و انتصال واجب نیز باید دید که کدام اه، اه، اه، اهمیت بیشتری داره و اون رو مقدم کنیم اگر امور همصد داشته پس مورد اول تضاغم امور ضروری با یک دیگه بود یعنی تکیه گاه ما این بود که در اون تضاغم بین اهداف در اه یک قالب ببینیم کدام ضروری تره بعضیش سطوع مختلف داره مثلا تامین فرض بکنیم امنیت خب می توانه مختلفی داشته باشه، تأمین عدالت حالا اونجا ممکنه متفاوت باشه، ولی مثلا تأمین امنیت خودشی مقوله است، اما مسادیق مختلفی داره و این مسادیق مختلف برخی از اونها نسبت به برخی دیگه ضروری ترند، اما برخی غیر ضرورین تأمین برخی از سطوح امنیت در واقع بعضی از مصادیق امنیت در سطح ضرورت مکنه نباشه ضرورت نباشه بلکه در سطح گوشا... کفاف یا گوشایش باشه خب در این موارد ما می توانیم خلاصه این رو لحاظ بکنیم الگوی در واقع تقدیم امور ضروری اینجا مقتضی شناخت سطوح مختلف در تأمین امنیته چنان که خلاصه دیگر اهداف مربوط به هر یک از نظام ها هم میتواند در واقع مقتضی تلاش برای شناخت سطوح هر کدام از آنها باشه این اختزار رو ما داریم پس منو برای مورد اول اینه که ما تضاهم امور ضروری با یک رو بررسی کنیم خب اینجا تقدیم قلصه امور ضروری تره در واقع نیاز بررسی مستقل در این قسمت اینه که در واقع ضرورت در واقع لزوم شناخت در بگیم که امور ضروری از امور ضروری تر اینو باید بشناسین این خلاصه باید در بیاد. اونجایی که با هم برابرند خب بر اساس الگوی رایج این مختزی ترجیحه در واقع برابری سطح ضرورت این یه معقوله دومی بود خب اینجا الگوی رایش چی میگه؟ الگوی رایج فقهی محتضیه اینی که باید حکم به تخییر کرد اما در الگوی جنبوساد یوسفی یه نکته دیگه آمده و اون چیه؟ اینکه میگه ببینید کدامش ما رو به هدف نزدیک میکنه در یک در این در یک تلقی خلاصه باید دید که کدام یک از این اهداف مربوط به اهداف اه اه اه میانی در یک نظام در یک نظام باید دید کدامش ما رو نزدیکتر میکنه خلاصه واقع میتوانه ما رو به هدف غایی نزدیکتر کنه چونانکه که اگر هدف مربوط به مرتبه پایینتر همینطور پس باید این اهداف میانی یا اهداف نزدیک در یک نظام کدام ما رو به هدف با سطح بالاتر نزدیک کنه در واقع داره میگه که آقا از حیث ضرورت اینا یکسانند خب اما این که ما بگیم بریم سراغ یه معیار دیگه پس معلوم شد این کفایت نمیکنه. این در واقع تقریر این روی کرد نشان میده که در واقع موعبات دیگری در شناخت اهمیت باید لحاظ شد اما اگر فرض کنیم دو در واقع دو مورد از جمعی جهاد با یک دیگر برابر باشند و اهمیت خاصی نسبت به یک دیگر در واقع نداشته باشه یکی از اونها نسبت به دیگری نداشته باشه در واقع این هم این مورد هم میتوانه مشمول قاعده تخییر در اهم و مهم باشه در موارد مساوی باشه این برابریه پس این سطح برابری خب شبیه همین حرف رو ما در برخی از موارد دیگه هم می توانیم بزنیم ما پس اولین ما اون موارد تظهمم فرض های تظهم در نظام ها رو که تفکیک کردیم. در واقع این بود برخی امور ضروری هستند خب ببینیم کدامش ضروری تره اگه مساوی اند جناب استاد یوسفی می‌فرمودن که ببینیم کدامش ما رو نزدیکتر میکنه اما در واقع خب این مورد میتونه اگر برابری کامل باشه ما رو به اون قبلی برگردونه خب اونجایی که یک طرف از یکی از اهداف جزء امور ضروریه و طرف دیگه جزء امور کفاف یا گشایش کدام مقدم بود امور ضروری مقدمه بریم معیار سوم اگر امور سطح کفاف با یک دیگه در واقع تضاهمم پیدا بکنن این مورد هم شبیه اون تضاهم امور در واقع ضروریه. اینها با هم هم عرزند. اگر خلاصه اینها هم سطح نباشند یکیش بیشتر باشه هر دو سطح کفافند ولی یکیش کفافا نیست بیشتر باشه اون باید مقدم بشه. خب در واقع به تعبیر دیگه اختزای ذاتی در واقع این برتری مختزی ترجیح مورد کفاف مورد قلوس راجه اما اگر همسط باشن چی دیدگاه در واقع یک روی کرد که روی کرده استاد یوسفی باشه این چی میگه یک روی کرد خاصیه یک روی کرد این است که امور همسط که در واقع اگر یکی از امور همسط در سطح کفاف میتوانه بیشتر ما رو به در واقع قایت به هدف بالاتر نزدیک کنه اون مقدمه اما اما اگر اینها نه این گونه نباشند این تعبیر متفاوت خواهد بود در واقع این که میگه هدف بالاتر باشه این امر به این معناست که در واقع وجوه ترجیح دیگر این نیز در این مورد خلاصه جای طرح دارند و جای بررسی اونها خلاصه قابل طرح اما اگر از همه جنبه ها از همه وجوه با هم برابر باشند چی چاره ای جوز تخییر و تمسک به در واقع قاعده تخییر در امور مساوی نخواهد بود اشان در واقع این قسمت رو یه مقداری نادیده گرفته میگه هرچند با فرمانششون قابل جمعه اما به هر حال این مورد رو هم باید لحاظ بکنند خب اونجایی که شبیه این منطق رو ما داریم شبیه این منطق که اگر اموری در سطح گشایش یک طرف سطح گشایش باشه یک سطح طرف کفاف امور مربوط به سطح کفاش مقدم میشه چرا؟ چونکه در واقع اقتضای ترجیح رتبی اونها در واقع تفاوت رتبی اونها این اقضار رو داره این ترجیح در واقع این ترجیح و تقدیم در واقع مضای تفاوت رتبی میان آنهاست بنابراین اگر بریم، مورد پنجم تزاهم امور گشایش با یک دیگه این اون پس بس یک و م... مورد یک و سه بود این مورد هم همینطور اموری که هر دو از سطح گشایشن. اینها گشایش آفری چیه؟ یک سطحه. خب کدام باید متفاوته اون باید مقدم بشه چرا؟ چون که در واقع این امر مقتضای تفاوت رتبی اونهاست اینا درسته هم سطحن از حیث گوشایش در واقع از سطح گوشایش اینکه هر دو مربوط به سطح گوشایشند در یک رتبند در... اما یکیش کشای نیست بیشتره خب اگر فرض کنیم یکیش بیشتر باشه اونجا همسط باشن و ترجیح نتوانیم بدیم در صورتی که هیچ ترجیحی بین اونها نباشه اینجا هم همینطور آقای جناب استاد یوسفی بیانشون این بود که در واقع مختزیه در واقع ترجیح موردی از این هاست که به تواند هدف بالاتر را تأمین کند یا بیشتر تأمین کند اما این فرض خلاصه مبتنی در واقع به نوعی خروج از آن فرض ماست خارج از فرض در واقع فرض ماست چرا؟ چون که ما فرض کردیم هیچ تفاوتی با مرده بالا نداره گفتیم برابران اما در هر سو در مجموع در مجموع اگر ما تفاوتی پیدا نکنیم تفاوتی بین اونها نباشه چاره جز تخییر نداریم اما اگر تفاوت دیگری غیر از در واقع همسط بودن در سطح گوشایش داشته باشن چی؟ داشت اگر این فرض باشه باید تفاوت مزبور لحاظ بشه خب. مورد دیگه بحث تزاهمه امور گشایش حلال با سطح گشایش حرام بود در واقع اینجا دیگه متفاوته در واقع حلال بودن یک مورد در واقع ببخشید حرام بودن یک مورد مقتضی پرهیز از اونه مگر اون که در واقع تمسک و بهرهمندی بهرهمندی از سطح گشایش به نوعی مشمول وجوب باشه در این صورت باید به دنبال وچه ترجیحی بود خب این وچه ترجیح چی میتوانه باشه؟ مثلا تأثیر در دستیابی به هدف بالاتر تنها در واقع تنها در صورتی میتوانه خلاص اینجا به عنوان وچه ترجیح طرح بشه که چاره ای جز ارتکاب اون مورد حرام نداشته باشیم این در امور جاری خیلی جا ممکن اتفاق بیفته دوستان صدای من دارن یکی بار تماسی با این مروری که ما داشتیم خواستیم اون معیارهای که ما برای زابط مندی در این قسمت و برای ارزیابی فرمایش جنابوساد یوسفی میخواستیم داشته باشیم این رو در واقع خلاصه تکمیل کنیم و شفافیت لازم رو داشته باشیم به صورت اجمالی خب برگردیم حالا ببینیم جدولی که ایشان من آخر جلسه بود اشاره کردم تا خیلی فشورده شد یه رو مرور کنیم بر اساس مسادیم ما تا حالا گفتیم که در واقع معیار چیه؟ معیار در روی کرده مزبور چی بود؟ مبتنی بر تفکیک که سه سطح ضرور گوشا... کفاف و گشایش بود چنان که سطح اسرافی فراتر از گشایش هم ما خلاصه پیدا کردیم حالا اگه اون کار نداریم مشابه این الان این در بحث اقتصاد مشابه شما این, این رو باید در همه سطور دیگه مثل امنیت، ادالت موادس نظام سیاسی و جایی دیگه به کار حالا اقتصادش رو دوستان ببینن در فایلی که خدمت شد دوستان هست یه دقیقی باید بکنند یه جدول داریم برای تضاهم و ترجیح مساله نظام چه در یک نظام چه بین دو نظام ما الان مثال میزنیم مثلا یکی امنیت که ادالت یکی همون رشد بود بر اساس اون روایت زیبایی که بود سلاست و اشیاین یحتاج و ناس و تررن الهی ها الامن و العدل و الخسب ال... و... الامن و العدل گشایش اینجا رشد گرفتن ما الان یک مفهوم امنیت داریم یه مفهوم ادالت و یک مفهوم رشد بر اساس الگوی که ما ارائه دادیم با دیدگاه جناب استاد یوسفی و این مقید خودمونو هم فراتر از اون بردیم موارد رو با یه تغریر دیگه تر بحث کردیم یه کمی فراتر و متفاوت شد از بیان ایشان شما یه طرف جدول امنیت رو دارید امنیت رو باید جدا جدا بگیریم امنیت سطح ضروری، ستون بالا میان پایینتر امنیت کفاف بعد میانیم پایین امنیت گشایشی در مقابل ستون مثلا افقی میگیم ادالت ضروری، ادالت کفاف، ادالت گشایشی خب، اگر بر این اساسی که ما شیش دسته کردیم گفتیم که یاداوری که هر کدوم یه مقداری تفسیره زدیم و از سه موردش دو قسمت دو قسمت کردیم تضاهم امور ضروری با یک دیگه که گفتیم آقا یکیش ضروری تره یکیش ضروریه مورد دوم تصاویه اینا بود خب اونجای پسی یه مورد این خودش رو دو قسمت کردیم برخلاف آقای یوسفی یه جایی هم امور ضروری با سطح کفاف یا سطح گشایش خب حالا تطریق کنیم امور کفاف هم هم سطح داشتیم این مورد سوم پنجم هم گشایش و هم سطح بود چهارم اون بالاتر امور سطح کفاف و سطح گشایش تظام داشته باشه مورد ششم هم ما اضافه کردیم سطح گشایش با سطح مثلا حرام خب حالا اینجا تو جدول اگر امنیت ضروری با عدالت ضروری حالا برفرض که عدالت رو بشه اینجوری سر بندی کنیم هم. اگر امنیت ضروری با عدالت ضروری تضاهم کنه ما چی گفتیم؟ گفتیم ضروری با ضروری خودش دو می کنیم یه جایی با هم برابر باشن یکی یکیش بیشتر باشه هر دو ضروری ولی ضروری تر ممکنه بگیم خب حالا ایشان اینو تفکیت نکردن میگن آقا هر در بین امنیت ضروری ادالت ضروری هر کدام رفاه را بیشتر کنند رفاه چی بود؟ اون قایت بالاتر بود اما اونجایی که امنیت ضروری با ادالت کفاف و ادالت گشاهشی تضاهم پیدا میکنه کدام مقدمه؟ امنیت ضروری یعنی امنیت ای بود اون رتبی بالاتر مقدم میشه و رتبی پایینی از عدالت که نسبت به عدالت کفاف و عدالت گشیشیه طبیعتا شبیه این رو بعد رشتم بگیم. اگر با رشد ضروری تنافی پیدا کنه کدام مقدمه امنیت ضروری و رشد ضروری میگه هر کدام عدالت رو بیشتر، رفاه رو بیشتر کنه. اما در ستون بعدی که رشد ضروری با امنیت رو عدالت کفاف یا عدالت گشایشی تنزام میکنه میگه کدام میگه این که مثلا رشد ضروریه اون امنیت کفاف اون بر اون مقدمه پس امنیت ضروری بر امنی بر عدالت ضروری مقدم نیست هر کدام رفاه رو بیشتر کنه اما امنیت ضروری بر عدالت کفاف عدالت گشایشی و همینطور بر رشد کفاف و رشد گشایشی مقدمه میایم تر. امنیت کفاف ستون و بعدی از بالا به پایین امنیت کفاف با عدالت ضروری کدامش مقدمه عدالت ضروری اما امنیت کفاف با عدالت کفاف کدام هر کدام که رفاه روشدار کنه امنیت کفاف با عدالت گشایشی یا با رشد گشایشی امنیت کفاف رتبهش بالاتره همینطور میایم پایین اد امنیت گشایشی اگر با عدالت ضروری یا عدالت کفاف تضامن پیدا کنه کدام مقدمه امنیت اون ضروری و کفاف مقدمه رتبه اما امنیت گشایشی با عدالت گشایشی یا رشد گشایشی تضامن پیدا کنه کدام مقدمه میگه هر کدام رفا رو بیشتر افزایش بده خب چرا؟ چون که سطحش بالاتره پس منطق کار الان در یک نظام معلوم شد اگر تزاعم در داخل یک نظام باشه، اگر داخل دو نظام باشه، مثلا اینجا ادالت اقتصادی بود حالا ما مطلق ادالت گفتیم، بگیم می بجایی که بگیم امنیت، امنیت اقتصادی ضروری بر ادالت اقتصاد ضروری، امنیت اد... امنیت اختصاصی کفاف با عدالت اختصاصی کفاف اما اگر ما مثلا یکی از اینها رو مربوط به یک نظام دیگه بگیریم فرقی نمیکنه. پس این جدولی که ما گفتیم هر جا رتبه یکی بالاتر اون مقدمه هر کدام ضرورت داره بر کفاف و گشاهش ادالت یا رشد مقدمه اگر رشد ضروری باشه اون سطح رشد ضروری بر امنیت کفاف و بر امنیت گشایشی مقدم میشه اگر همرتبه باشن هر دو ضروری باشن اگر هر دو کفاف باشن اگر هر دو گشایش باشن کدام مقدمه؟ هر کدام که رفاه رو بیشتر کنه لذا ما الان در این جدول مواردی رو دو گونه خلاصه بحث داریم یکی میگه هر کدام رفاه رو بیشتر کنیم چرا؟ چون رفا هدف نهایی بود خب این پس جدول تضاهومه در داخل یک نظام و همینطور در میان دو نظام سه نظام منطق کار این بود که اونه که ضروریه بر گشاهش شد بر کفاف مقدمه اونجایی که هم رتبه باشن این هر کدام اون هدف قایی رو مقدم میکنه خب این قسمت اول بود که تضاهم مساله داخل یک نظام بود یا تضاهم میان اهداف این نظام با اون یکی نظام بود پس اول میگفت ببین سطح رتبه اونا از جهت هدف چیست هدف نهاییست یا مقدماتی یا میانی بعد اگر هم رتبه بودن این الگوی رو پیاده کنید اونا رو سطبندی کنید منطب یه تحلیل رایج فقهی چی بود؟ این تذکر در واقع فقری اصولی که در واقع یه نکته که بود اگر اون سط گوشایش چیه؟ معمولا مفهوم تزاهم در ادبیات فقهی اصولی یا بگیم اصولی فقهی اصولی فقهی کجا به کار میره برای موارد غیر واجب و حرام به کار نمیرود لذام اگه ما بعد ببینیم بعد ببینیم مفهوم گشایش و کفاف باید سخت‌بندی بشه باید معلوم شه که مفهوم گشایش و کفاف آیا مربوط در واقع مربوط به سطح واجب و حرامم یا اینکه نه اینها مربوط به در واقع یا مربوط به سطح استهباب و کراحتند. اگر مربوط در واقع در واقع، اگر مفهوم گشایش و کفاف در سطح، خلاصه امور واجب و حرام به کار گرفته بشه این خب نداره مفهوم تزاهم در این مسادیق قابل صدقه اما اگر این دو مفهوم ناظر به امور مستحب و مکروه باشند گرچه در واقع من در واقع تقدیم امور ضروری بر اونها درست است اما خلاصه تحبیر غیرفن نیست به کارگیری مفهوم تزامهم در مورد اونها تسامهی خواهد بود هرچند راهگوشای خلاصه ما خواهد بود و در واقع ادبیات مزبور ناظر به ناظر به تقدیم سطحی از موارد اهم و مهم هست. اما بیکارگی این مفهومی مقداری نادرسته. خب. اگر در این قسمت فرمایشی دوستان دارن بفرماین تا بعد بریم با ذکر یک سلوات و یه دو سه دقیقه استراحت بریم سراغ اون بحث مساله فرد و نظام در خدمت خب دیم اگر دوستان فرمایشی دارن بفرماین در گفتگوه های عمومی که دوستان گذاشتن فرمودن آقای ارس خلاصه این من چون که دوستان فرمودن شعر بکنید جدول رو چون که با موبایل سالم به موبایل با ببخشید با دوستان از طریق موبایل فایل و اینا که دارید خدمت شما هست در لپتابه حالا اگر کسی دوستان بخواه شعر بکنید نمیدون میشه نه نم. خب آیه لنگری فرمودن که وقتی در سطح نظام اجتماعی سطح بیرندشید یعنی وقتی در محدوده فقه نظام بیرندشید اینها سطح وجوب و حرمت پیدا نمی کنند این رو اگر توضیح فرماید خوبه یعنی چیز سطح وجوب و حرمت پیدا نمی کنند. شاید مراتشان همین عرض بنده باشه یعنی اگر اینه خب مثلا بگیم که مفهوم گوشایش و مفهوم در واقع کفاف یه جوریه اما به نظر میرسه مفهوم خلاصه کفاف میتوانه در مباحث مربوط به نظام اندیشی خلاصه به عنوان امور واجب قابل طرح باشه در واقع بگیم که مثلا به طور به این معنا به طور نمونه می توان گفت خلاصه تامین مایحتاج عمومی مایحتاج عمومی توسط دولت دولت اسلامی واجب است خب مگر اینکه مثلا بگی شما سطح کفاف را در نظر نکنیم اما به نظر میت گفت تمین ماحتاج عمومی در سطح کفاف واجب است، اما به کارگیری در واقع این مفهوم گشایش، گوشایش بر به عنوان یک واجب در واقع واجب شرعی برای دولت اسلامی شاید شاید روا نباشد شاید مناسب مفهوم نباشد در واقع و نتوان در واقع این رو واجب تلقی کرد خب اگه این طور باشه ترجیح در این صورت در واقع ترجیح میان امور کفاف و گشایش سخن است اما نباید در واقع اون رو از مسادیق تزاهم اصطلاحی دانست البته یه نکته کمکی هم میکنه اون چیه؟ در واقع این نکته داره که در واقع استهبابی بودن امور گشایش در واقع به شفافیت در واقع به راحت‌تر بیانگر ضرورت نشان دهنده خلاصه ضرورت تقدیم امور کفاف بر اونها خواهد بود سخنه جناب استاد یوسفی الکوشون به هم نمیریزه منتها اسم گذاری به هر حال مهمه در واقع امور کفاف یه مقدار جا داره خب چرا البته این بحث یه مقداری به کارگیری مفهوم کفاف با توجه به مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی هم در واقع خواهد بود به خلاصه این نیست که مفهوم کاملا مستقل باشه ما مفهوم کفاف رو برای کجا به کار می بردیم ببینیم برای سطح کفاف بود یا برای سطح ببخشید برای رفع فقر مطلق بود یا نه یک تعبیر ایشان دارن مبتنی برای این که میگن که پس آقا ببینید ما الان در این الگو دنبال چی هستیم تعیین هم و مهم در اینجا بر اساس تحصیل رفاه مساله مربوط به اینجا مربوط به به لحاظ رفاه خب پیشان اینجا در یه توضیح که قبلا داشتیم در بحث مسئله فرد و نظام هم قابل ترهه قابل پیگیریه که ما ببینیم آها مفهوم اون کفاف رو کجا به کار میبریم مفهوم گوشایش رو کجا به کار میبریم در واقع این فقر مطلق تأثیر داره کجا سطح فقر مطلق کجا فقر مطلق نیست این رفاه ما در سطح هدف عالی گفتیم که رفاه عمومی اما رفاه عمومی میتوانه هم در سطح در واقع بگیم رفع فقر مطلق باشه هم در سطح خلاصه اموری باشه که فقر نسبی رو بخواه رفت بکنه این مفهوم رو به نظر میرسه که ناظر به اونجا ما باید به کار ببریم ای اینجا به تعبیر دیگه اگر ما بخشی از جامعه رو زیر خط فقر مطلق بدانیم و اینو از فقر مطلق نجات پیدا کنن خب ضرور... چی اینجا تأمین شده برای اونها ضروریات اونها تأمین شده افرادی که زیر خط فقر نسبی قرار دارند، اگر از این فقر نسبی خارج بشن به رفاهشون افزوده شده ولی چه سطحی به حد کفاف رسیدن در واقع خروج در واقع از فقر مطلق از طریق تأمین ضروریات اقتصادی است از این رو دیگه اینجا فقر مطلق با این مفهوم ضروریات گره خورده اما خروج از فقر نسبی از طریق در واقع تأمین امور کفاف، در واقع از با دستیابی, دستیابی به سطح کفافه خوب. این نکتر ما باید در نظر داشته باشیم که مفهوم کفاف برای کجا بود با توجه به نسبت دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی بود در واقع خروج از فقر مطلق مختزی سطح کفاف نیست این مفهوم در واقع مفهوم کفاف با خروج از فقر متلق تعریف نمیشه اما خروج از فقر, فقر نسبی با دستیابی به خلاصه سطح کفاف و متفرر بر اینه خب اون قسمت بالاتر من فقر نسبی داشتم با سطح کفاف خارج جدم خب این مفهوم سطح کفاف میتواند در واقع سطح پایین رفاه تلقی شود مفهوم رفاه مگه نداریم در واقع تحقق بخش سطح پایین در واقع سطح از مفهوم رفاه باشه اما اونجایی که فقر مطلقه چی؟ نه خب سطح گشایش چی؟ سطح گشایش تأمین کننده سطح بالاتری از رفاه خواهد بود بگیم اونجا مثلا چه بسا بگیم در واقع بگیم رفاه نسبی می توانید برای اون سطح کفاف در واقع مفهوم سطح مفهوم رفاه نسبی رو برای سطح کفاف به کار گرفت اما اون سطح گشایش میتوانه سطح بالاتری باشه اما چه سطحی از رفاه این سطح رو میتوان از زنخ رفاه مطلق تلقی کرد حال اگه رفاه مطلق رو یک سطح بگیریم در واقع از اون زمره تلقیش بکنیم خب پس این که جناب آقای لنگری فرمودند در محدوده فقه نظام بیندشین سطح وجوب و حرمت پیدا نمی کنند خب آیا سوال این سطح رفاه مطلق واجب طبیعتا می توان از در واقع وظیفه دولت اسلامی رو در واقع یکی از وظایف دولت اسلامی رو ما در واقع تأمین رفاه در واقع نسبی برای جامعه رو رفاه نسبی برای جامعه و خارج کردن اونها افراد جامعه از سطح از سطح فقر مطلق و حتی فقر نسبی خلاص یکی از وظایف حساب کرد. اما ای آیا اون سطح بالاتر رو می توانیم در واقع وظیف حساب کنیم این جای بحثی داره. لذا اگر ما با نگاه واجب و حرام و حکم تکلیفی بخوایم بررسی کنیم به نظر نمی رسد که در واقع تأمین رفاه مطلق از وظایف دولت اسلامی باشد از وظایف واجب بگیم از وظایف واجب الان تو وظیفه که میگیم خلاصه همینه این دیگه خلاصه میتونه بنا بر این اگه اینطور باشه اون مفهوم استحباب رو چه وسا بهشه به کار ببریم اگر فرمایشی باشه در خدمت هستم ولای دو سه دقیقه استراحت الحمدلله رب العالمین در خدمت هستن.